الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم احسن عمل وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طبقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين قلب اليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير سوره مبارکه ملک هست که از سوره های معروف و مشهور قرآن کریم هست سوره ملک سوره مکی هست سوره هست که در مکی مکرم نازل شد و از نظر ترتیب هفتاد و هفتمین سوره هست در قرآن مجید سورهی هست بسیار زیبا در این سوره صفات پروردگار توهید الهی عظمت رب سبحانه و تعالی به زیبایی بیان شده فضائل بسیار زیادی برای این سوره در روایتها داریم در احادیث داریم روایتی داریم از ابو هریره رضی الله تعالی عنه که این روایت در سنن ترمیزی هست ابو هریره می که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند کسی که سوره ملک را تلاوت میکند همیشه تلاوت میکند همیشه میخواند روز قیامت این سوره برای او شفاعت میکند و تا زمانی که مغفرت او نشود این سوره ترک نمی کند رها نمی کند یعنی تا زمانی که برای تلاوت کننده خودش برای خاننده خودش از خدای تعالی سفارش و شفاعت مغفرت نگیرد او را رها نمی کند و روایت دیگر هم در سنن ترمیزی هست از عبدالله بن عباس رضی الله عنہما که ایشون فرمود که سوره ملک سبب میشه که انسان و تلاوت کننده سوره ملک از عذاب قبر نجات پیدا بکند خدای تعالی این سوره را وسیلی نجات از عذاب قبر قرار میدهد و در بعضی دیگر روایت هست ان حضرت صلی الله علیه و وسلم تمنا داشتند در معجم تبرانی هست در معجم کبیر تبرانی که ان حضرت صلی الله علیه و وسلم تمنا داشتند که هر فرد از امت من این سوره را حفظ داشته باشد این سوره را یاد بکند لذا این سوره سوره بسیار پر فضیلتی و این سوره را یاد کنید حفظ کنید در نمازهای شب بخانید و اگر کسی این سوره را با حضور قلب بخواند، با توجه و تدبر به آیات زیبایش و به صفات زیبایی که برای پروردگار بیان شده و به اون نعمتهایی که پروردگار به ما این فرموده به اونها تدبر بکند یک محبت خاصی و عظمت خاصی از رب سبحانه و تعالی در دل انسان پیدا میشه بسیار این سوره سوره بسیار پر هست زمانی که در حبشه نجاشی ایمان آورد و بسیاری از علماءی که اطراف نجاشی بودند از علماء مسیحی آنها ایمان آوردند وفدی را و هیئتی را نجاشی خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرستاد اینها آمدن رسول الله را ملاقات کردند و رسول الله در حضور اونها سوره ملک را خواند. چنان تحت تأثیر قرار گرفتند که آن حضرت سوره ملک را می‌خواند و اونها عشق می‌ریختند گریه می کردند تأثیرات عجیب این سوره دارد سوره بسیار مبارکی هست و مناسبت این سوره ربط این سوره با سوره های گذشته اینه که شما در سوره های گذشته موضوع جهاد و انفاق را خاندید در سوره مختلف از سوره حدید گرفته تقریبا تا اینجا موضوع یا جهاد بود بیشتر موضوع غالب موضوع در وسط موضوعات دیگه هم بود یا انفاق در راه الله و جهاد و انفاق همون طوری که بارها ذکر شده و عرض شده برای احیای توحید هست برای اعلای کلمت الله هست برای اینکه نام نامی پروردگار بلند بشه لذا بعد از جهاد و انفاق مجدن موضوع توحید و صفات پروردگار بیان میشه بیشتر در این سوره از سوره ملک تا سوره جن مباحث توحید هست در این سوره اول در سوره ملک عنوان میشه که تبارک الذی بیده الملک اون ذاتی که در دست او ملک و پادشاهی هست اون ذات برکات دهنده هست معنیش اینه که ای بندگان خدا برکت را از کسی دیگه نخواهید و نجوید. برکات دهنده فقط الله هست و برکت در چیزی دیگه نیست مگر در آنجایی که خدا برکت بده. و بعد در سوره بعد از اینکه سوره قلم هست می خانیم ودو لو تدهن و فیدهنون که این کفار و مشرکان دوست دارن در رابطه بس موضوع توحید شما از خود نرمش نشان بدهید تا اونها هم نرمش نشان بدهند ولی ببینید که شما اطاعت نکنید شما نرمش نشان ندهید و در سوره الحاقه تخویف اخروی هست بعد از قلم تخویف اخروی هست برای کسانی که این توحید را قبول نمیکنند باور ندارند و در سوره معارج زجر و سرزنش و عتاب هست برای کسی که منکر توحید هستند در سوره نوح که بعد از اون میاد دلیل نقلی هست بر اثبات توحید از پیامبر خدا سیدنا نوح علیه و در سوره بعد از نوح که سوره جن هست در اونجا دلیل نقلی هست از جنات که جنات هم اقرار کردن به وحدانیت خدا به یگانگی خدا لذا همه این سوره ها مثل حلقه ها یک زنجیر با هم دیگر مرتبط هستند و موضوعاتشون به هم دیگه پیوسته هست. لذا در این سور بحث توحید را می و برای اثبات توحید در این سور تا دلیل عقلی عامه می خانیم دلیل عقلی عمومی هستند و تا دلیل خاصه می خانیم تا دلیل خاص هستند که هر دلیلی در رابطه با یک موضوع خاص هست و چندین تبشیر و تخویف در این سور ما می خانیم که الله تعالی هم مجده میده و هم بیم میده میترساند می ترساند اما آغاز شده سوره با این جمله زیبا تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل قدیر در این جمله مختصر دو تا دلیل عقلی بیان شد اول مدعا هست تبارک الذی با برکت است آن ذاتی که به دست او هست پادشاهی با برکت هست یعنی برکات دهنده او هست همه برکات را از او بجوید از جای دیگه برکت نگیرید برکت در انسانها نیست برکت در قبر نیست برکت در بطها نیست در اون غذاهایی که جلو بطها میگذارید نیست برکت در نظر لغیر الله نیست بلکه برکات دهنده فقط و فقط ذات الله هست آن پروردگاری که بیده الملک الذی بیده الملک این دلیل اول عقلی هست دلیل عامه هست اون ذاتی که بدست او هست پادشاہی اون ذاتی که پادشاہ مطلق هست پادشاہ هم شو امیدونید که اختیارات تام در ملک خودش داره لذا پروردگار پادشاہ مطلق است یعنی اختیار تام دارد او برکات دهنده برکات او به شو کسی دیگر دیگر نیتونه بده و دلیل دفم و هوا علا کل شئی قدیر و اون ذات بر هر چیزی قادر است هر چیزی که بخواهد او میتواند انجام میده و دلیل الذي خلق خلق الموت وَالْحَيَاتِ این دلیل سفم عقلی عامه است هر چیز قادر است بالخصوص مهمترین مهمترین چیزی که برای انسما شما انسان ها وجود دارد موت و حیات است اون ذاتی هست که موت و حیات را او آفریده. موت شما هم به دست او هست. حیات و زندگی شما هم به دست او هست. اما این خالق موت و حیات را برای چی درست کرده؟ چرا یک گروهی می آیند، یک گروهی می روند؟ ست سال پیش انسانهای بودند امروز خسری از اونها نیست. کسی از اونها امروز ما نمی بینیم. ست سال بعد، 50 سال بعد، هیچ کسی از ما را هم کسی نمی بیند. کسی از ما نخواهد بود، قرن دیگر، چرا زمین هر قرن یک بار جارو میشه گویا جارو میشه این نسل برو یک نسل دیگه بیا چرا این طور هست لیبلوکم ایکم احسن و عملا برای یک هدفی هست برای یک مقصدی هست الله تعالی موت و حیات را آفریده شما را یک گروهی را میارت تازه زنده میکنه صبح برو زائشگا ببین 20 نفر 30 نفر چل نفر پنجا نفر متولد شد. برو قبرستان می بینید که چل پنجا نفر داره میره بی اون دنیا همیش این کاروان در حال رفت و آمده یک بخشی یک جمعی میاد یک جمعی میره چرا خدا تعالی مقصدش جیه الله میفره امتحانی هست شما را مدتی در این زمین نگه میدارم لیبلوکم ایکم احسن و عملا تا اینکه شما را بیازماید الله امتحان بکند که از شما عمل چه کسی زیبا تر است چه کسی بهتر عمل می کند، چه را تشخیص میده، ده، چه کسی واقعیت دنیا را می و میداند داند که چکار بکند، چه اعمال زیبایی انجام بده، و هو العزیز الغفور، اون ذات، ذاتی هست که غالب هست، هر کاری رعومی انجام می و غفور بخشاینده هست، یعنی کسانی که به سوی او رجوع کنند و به پروردگار برگردند، اونها را می <تصفح> الذي خلق سبع سماوات طبباق ان سط دلیل بودن دلیل عقلی عامد تمام شد حال دلائل حشگانه عقلی خاصه. اولین دلیل درباره آسمان است. خدا تعالی فقط در بار آسمان سخن می فرماید. الله می فرماید الذي خلق سبع سماوات طبباقا. الله آن هست که آفرید هفت آسمان را تباقا یعنی تباق به تباق درجه به درجه یکی اولی هست بعد دومی هست بعد سیومی هست تباق مانشینه تباق به تباق درجه به درجه و این هارا توری آفریده که ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت نمی بینی در پیدایش الرحمن هیچ تفاوتی نمی بینی یعنی هیچ اختلافی و عدم تناسبی نمی بینی یک جای کچ باشه یک جای کوج باشه یکی جای بالا یکی جای تهرفته نا همه برابر یک نگاه کن آسمان را ببین کوچکترین ترین تفاوتی و اختلافی و عدم تناسبی در آسمان می بینی فرجع بصر شاید خوب ندیدی خدا میگه دوباره چشمت رو برگردان به سوی آسمان هل ترامی فطور ای در آسمان شکافی میبینی پاریدگی که یک جا سالم باشه یک جفاره باشه یک جای باش جا دیگه دریده یک جای دیگه نیست یک جای بلندی داره یک جای پستی داره هیچ چیزی نمیبینی همه آسمان مثل همه هستند شما آمریکا برو ببین فکر میکنی همین آسمان زاهدان اونجا هست همه مثل هم هستند هر گوشه از دنیا میری آسمان را نگاه کن هیچ فرقی آسمان با هم دیگه ندارد الله می فرماید برای اتمینم بار دوم و سوم هم نگاه کن ثم مرجعی البصر کر سپس برگردان چشمت را سوی آسمان کر رتین. یعنی بار بار گرچه سیغه تصنیح هست اما بمانه بار, بار بار نگاه کن آخر نتیجه چی میشه چشم تو خسته میشه ولی تو هیچ ارادی از آسمان من نمیتونی بگیری یک قلب الیک البصر وخاسا برمیگردد به تو چشمت خاصا خاصا یعنی بدون نتیجه ناکام هیچ نتیجه ای نگرفتی هر چی مطالعه کردی و هو حسیر در حالی که خسته شده یعنی بدون نتیجه خسته شده چشمت برمیگرده ولی شما اشکالی در این مخلوق عظیم پروردگار نه از نظر زیبایی نه از نظر برابری نه از نظر سراغسوم به هیچی نمی بینی همه چیز برابر هست کسی که یه چیزی درست می کند و خیلی بزرگ درستش می کند خیلی متفاوت میشه خیلی مشکل دارد ولی الله عز و جل هیچ تفاوتی نمی بینی معلوم میشه که این قدرت قدرت خارق‌العاده اون اونجا این اسمان را بسته که هیچ کس شما دسترسی ندارید حتی به اونجا برسید لذا الله می فرماید ببینید به این مخلوق بزرگ من و چه ویجگی های دارد و از این نتیجه بگیرید که واقعا این خالق دارای عظمت است این پروردگار, پروردگار بزرگی هست هیچ مخلوقی را نمیشه قیاس کرد نه پیامبری را میشه قیاس کرد نه ملک و ای را نہ جننی نہ انسانی نہ امامی نہ ولی نبی هیچ الله می فرماید ببینید مخلوق من را و با عظمت من به جلال من به شکوه من شما پیه ببرید ولقد زیننا السماء الدنيا بمصابيح این دلیل عقلی دوم هست که دلیل اقلی خاص است این همه آسمان ها که ما آفریدیم الله می فرماید ولقد زیننا السماء الدنيا همنا ما مزین کردیم آراست کردیم آسمان دنیارا. این آسمانی که شما اهل دنیا او را می شما بقی آسمان ها را نمی بینید آسمان شما کدوم همینی که شما می بینید وَلَقَدْ السماء الدنيا الدُّنْيَا بِمَصَابِحَا چراغا چراغای چْراغَای نورفکنی شما می بینید که این چْراغَا چقدر زیبا هستند بنده همیشه مثالی که به ذهن من میرسه اطلاعات من محدوده در دنیا مردم وقتی که یک نورافکنی درست میکنند یک نورافکنی میگویند در دوبی درست کردن روی برج خلیفه زدند این نورافکان تا سی کیلومتر تو دریا نور میزنه نورش شعا داره. تمام دنیا جمع شد ابتدا تمام خبرنگارها نگارها تمام اکاسها اکس گرفتن فیلم گرفتن که چه هنری یک دو، دولتی یک کشوری چه هنری از خودش نشان داده و چه قدر خلاقیت از خودش نشان داده که چنین نورافکن بزرگی را درست کرده تا دور تو دریا میتونی ببینی چه قدر 20 کیلومتر 30 کیلومتر بیشتر از اون که نیست اما این نورافکن ها را ببین الله عزوجل درست کرده اینها هزاران سال هستند میلیون ها سال هستند اینها برقرار روشن هستند اینها نخسته میشوند نا کم نور می شوند نا یکی از اینها گم می شود و با چک فاصلی خدا میدونه چند هزار سال سال اون هم با سرعت نور اون جابری هم نمی رسید. لذا این خالق هست این رب بزرگ هست که چنین آسمانی را با این زیبایی آفریده. و واقعا زیبا هست انسان برگاهی انسان میره یک جایی که یک بیابان هست اونجا هیچ چی نیست نوری نیست اونجا برقی نیست انسان نگاه میکنه آسمان را سبحان الله چه زیبایی دارد چقدر این ستاره ها زیبا زیبا کنار هم چیده شده و بعد چه فاصله‌ای و بعد شما تصور بکنید این آسمان اگر این ستاره ها را داشته نباشه این خورشیدی که ستاره است خورشید را داشتن باشیم، ماه را داشتن نباشیم ستاره ها را هم داشتن باشیم. هیچ چی نباشه؟ این دنیا یک وحشت که درست میشه. جای میشه که انسان حتی شبه نمی بیند. انسان دستش را نگاه می که چند سانت فاصله ندار، هم نمی بیند. چه وحشتی ایجاد میشه؟ لذا الله عزوجل این زیبایی ها را آفریده. اینا هم دال بر قدرت پروردگار هستند و هم تمام دنیای شما را زیبا کردند لذا الله می فرماید ولقد زیننا السماء الدنيا بمصابيح همانا ما مزین کردیم ما زیبا کردیم آسمان دنیا را به وسیله چراغا و جعلناها للشياطين و ما قرار دادیم اون چراغها را باعث زدن شیاطین رجوم شیاطین یعنی اسباب ضرب و اسباب شلیک سوی شیاطین ببینید ستاره ها ستاره ها خود ستاره ها را نمی زنند بعضی ها مفهومی غلط می گیرند می که اگر شیاطین برند استراقص هم بکنند ستاره را می زنند نه از وسط ستاره یک جراقه که اسم اون جراقه شهاب ساقب هست یا بتعبير خود ما یک چیز شلیک میشه بسویه بسویه بسوی چی بسویه اون شیاطین این را میگرا یک احمق کتابی نوشته بر علیه قرآن مجیدی که از مسیحیان نوشته که چطور ممکن هست که این جن را که حجمی ندارد و جُسَیْن نداره به وسیله ستاره بزنن که ستاره از زمین هم بزرگ است بسیاری از ستاره ها از زمین خیلی بزرگترند چطور با اون ستاره ای بزنند بزنن تمام دنیا خراب میشه کی گفته ستاره رو میزنند خدای تعالی میفرماید فأتبعہ شهاب فاقب یک شهابی شهاب در واقع از کنم که ترکیشی هست جرقه ای یک شلیکی هست که بعضی میگن در وسط ستاره انفجارهای میشه و از اونجا این جرقه ها میاد و هدف قرار میده شیاطین را اصل جریان اینه که در گذشته مشرکین اعتقاد داشتن که کسانی که با جنات سرکار دارن اینا اخبار غیب را میدونن بلد هستن چون که این جنات را میفرستند در آسمانها در جایی که در اون ملع غیب اون جماعتی که با هم مشوره میکنند اونها با هم مشوره میکنند جنات راحت میرن اونجا و از اونها سخنانشون را میشروند در حالی که جنات چینی قدرتی ندارند بالخصوص بعد از این که ان حضرت صلی الله علیه وسلم آمدند در سوره جن انشاءالله تفصیلش را میخانیم تمام راها مسدود شد تمام ورودی های آسمان بسته شد کسی دیگه نمیتونست بره جن تا اینکه میرفت از داخل ستاره به وسیله فرشتگان شلیک میشد به سوی جن که این جن اگر بیش اصابت می میکرد پودر میشد کشته میشد و یا اینکه دیوانه میشد لذا الله عزوجل اون را فرموده که و جعلناها رجوما لشیاطین برای شیاطین رجمی و تیری سبب تیری ما قرار دادیم و اعتدنا لهم عذاب السعیر و آماده کردیم برای اونها عذاب السعیر را عذابی که سوزنده باشد منظور از این عذاب سعیر گفتند عذاب جهنم نیست بلکه همین شهاب ساقب وقتی که از اونجا شلیک میشه این جنیه می میسوزاند این در میگیرد آتش میگیرد او مراد هست لذا این دلیل دوم هست الله عز وجل میفرمید ببینید که من چه نظم زیبایی در آسمان ها در اون جایی که خدای عز و جل بسیاری از فرشتگان را اونجا نگاه داشته برای انجام امور من ایجاد کردم بعد از اینکه برای شیاطین وعید بیان شد که این شیاطین به وسیله به وسیله ستاره ها مورد ضربه قرار می گیرند که ملائکه می زنند حال کسانی که دنبال روی شیاطین باشند کفار خدا تعالی برای کفار وعید بیان می فرماید وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم برای انهای که کفر کردن نسبت به شهن ازاب جهنم هست برای کفار و بئس مصیر این مزمت جهنم هست بسیار جای رجوع بدی هست ای شدت ازاب هست بسیار جای بدی هست اذا القو فيها سمعوا لها این شدت ازاب اذا القو فيها هرگاه انداخته می شوندد در آن جهنم سمعو لها سمعوللهها شیقا میشنوان برای آنجهنم صدایی صدای محیبی شق سر و صدا را میگویند، اصل شیق صدای اولاغ را میگویند ولی منظور اینه که چون صدای اولااق نسبت به بقیه حیوانات بلندتر است صدای بسیار بلندی میشنند. این صدا مال چی هست مفسرین بعضی میگویند که این صدا مال خود جهنم است. امونطور که گاهی شما می شنوید رعد چطور صدا می که تمام زمین و کوها می لرزد تمام انسان ها زده می شوند حیوانات فرار می کنند لذا جهنم یک چنان صدای محیب و خطرناکی دارد در درون خودش که وقتی اون صدا و اون غرش بلند می شه جگرها پاره می شه تمام انسان اونجا از بس از اون صدا وحشتناک از کنم که متأثر میشه همه میوفتند بعضی گفتن این صدا مال خود جهنم است. اما بعضی میگن نه این صدا صدای جهنمی ها هست وقتی که اونجا میسوزن چنان جیغ هست چنان آه و فغان است چنان ناله و سر و صدا هست که انسان اونجا هیچ آرامشی ندارد بعضی وقت هم مردم افرادی تو زندان ها میوفتن خداوند هیچ کسی را نبرد اونجا تو زندان یکی که انسان خودش زندان هست این خودش یک شکنجه هست اما گاهی از بقی زندان ها انسان آه و ناله های میشنود سر و صدا های خصوص تو سلول ها که هر روز میبینید جیغ میکشن فریاد میزنن، بعضی دیوانشون از بس که اونجا هستن سرشون را میزن دیوار و چنان فریاد میکشن که انسان روی اعصاب انسان هست انسان دیوانه میشه سر و صدا لذا عذاب جهنم خودش یک عذاب است سر و صداهایی که اونجا جهنمی ها کنند اون یک عذاب دیگر است الله میفرماید سمعوا لها شهيقا میشن برای آن جهنم صداهای مهیبی و هی تفور در حالی که اون جوش می زند اون چنان جوش و قلقل کند به اصطلاح جهنم که نزدیک منفجر بشه. الله می تقاد و تمیز من الغیز نزدیک است که منفجر بشه از غیز، از بسک اسبانی هست. کلما اولقی فيها فوج دلیل عذاب. الله فرماید هرگا انداخت میشه در جهنم گروهی جماعتی جماعتی وقتی که از کفار، ای فوج من الکفار چون جهنم اعدتن کافرین گروهی از کفار انداخته میشه، اون وقت داروغه ها ازش می پورسنت. خزنه جهنم میپرسند سألهم خزناتها الم يأتكم نذیر میپرسند از اون گروه میپرسند از اون جماعت خزنه جهنم الم يأتكم نذیر ای پیش شما ترسانند نیامد آیا پیامبرانی که شما را از این عذاب بیم بدهند نیامدن قالو بلا خد جاءنا نظیر میگوین چرا نه بلکه پیش ما نظیر آمد ترسانند آمد خب شما چی کار کردید؟ فکردبنا ما تکذیب کردیم ما گفتیم شما خلاف میگید شما دروغ میگید و قلنا ما نزل الله من شئی و ما گفتیم خدا هیچ چی نازل نکرده چین چیزی نیست این همه افسانه هست همه دروغ داستان شما خودتون بافتید. ان انتمم اللافی ضالالنگ كبير ما به اون پیامبران گفتیم شما نیستیم مگر در گمراهی آشکار شما گمراهی بزرگ یعنی به پیغمبران توهین هم کردیم. اونها رو گمراه خواندیم وقتی که اونها چیزهای از غیب به ما میدادن که اقل ما نمیتونست اوننا را حذم بکند. مشکل انسان بیچاره همینه که انسان میخواد همه چیز را با این عقل کوچولو ترازو بکند میخواد با این عقل بسنجد وقتی که کم میارد انکار میکند وقتی که قبول ند برایش قابل حضب نیست قبول نمیکند لذا اونجا پشیمان میشه این کافر که همه چیز را انکار کرده اونجا پشیمان میشه چی میگه وقالو لو کنن نسمعو او نعقلو ما کنن في اصحاب السعير مشرکین میگویند اگر ما گوش می کردیم در دنیا لو کنن نسمعو اگر ما گوش می کردیم او نعقلو یا ما درک می کردیم می واقعا متوجه می شدیم اجا حقیقت را ما کنن في اصحاب السعیر ما امروز در اصحاب سعیر نبودیم در اهل جهنم نبودیم امروز اینجا نمی فاعترافو فاعترفو بذنبهم الله می فرماید بگناهشون اعتراف میکنند بگناهشون اعتراف میکنند قبول میکنند فسحقا لی اصحاب السعیر سحقا یعنی دوری از رحمت خدا دوری از ارز کنم که لطف و رحمت پروردگار و نعمت خداوند برای اصحاب السعیر برای اصحاب جهنم لذا این تخویف بود این تخویف برای چه کسانی بود؟ برای اهل جهنم برای کسانی که کفر کردند و وارد جهنم شدند اما بعد از این تبشیر است برای کسانی که از خدا می ترسند برای کسانی که فکر آخرت دارند الله می فرماید اِنَّ یخشون ربهم رَبَّهُمْ همانا انهایی که می ترسند از رب بالغیب می ترسند ندیده می ترسند خدا را ندیدند و می ترسند لهم مغفرت و اجر كبير برای آنها مغفرت از جانب رب العالمین و برای انها اجر بسیار بزرگ هست برای انها مغفرت بسیار بزرگ از سوی پروردگار و اجر پاداش بسیار بزرگ است و اسر قولکم او وجهره به انه عليم بذات الصدور عزیزان اونجا جلسه ی حضن طرف توجه نکنید صدا میاد ولی شما سعی کنید آیات را بفهمید بعضی از منافقین چون منافق اعتقادی هیچ نداره یا اعتقادش توأم با شک و تردید است بعضی از منافقین با هم صحبت می‌کردند و بعضی گفتند نه چون این سوره سوره مکی هست بعضی از مشرکین چون در رابطه با منافقین هم شبیه این آیه ما قبلا خواندیم منافقین هم همینو میگفتند مشرکین با هم دیگه میگفتند که اگر ما آهسته آهسته صحبت کنیم خدای محمد نمیشنود به او خبر نمیدهد اما اگر بلند صحبت کنیم الانی صحبت کنیم او میشنود بعدا به محمد خبر میده او متوجه میشه از نقشه های ما الله عز وجل پاسخ دادم وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِجْهَرُوا به شما سخانتون رأيست کنید یا سخانتون رأجه رألنی کنید فرق ندارد إنه علیم بذات الصدور همانا ان ذات ذات پروردگار علیم هاست دانا هاست براز سينها ان راز سينها رأخ خوب ميدانات ألا يعلم من خلق ان علت هست آیا اون ذاتی که آفریده نمیداند اون کسی که از همه زیر و بم های انسان خبر دارد از همه پیچ و درون انسان خبر دارد او مگر نمیداند از انسان خبر ندارد الا يعلم من خلق آیا نمیداند اون ذاتی که خلق کرده آفریده و هو اللطیف الخبیر این التی اصلی است اون ذات ذاتی است که لطیف است لطیف را قبلا هم برای شما تفسیر کردم اون کسی که زرافت ها را میداند باریکی ها را میداند لطیف یعنی باریک بین نه چیزای علنی را اون مخفیات را هم میداند الخبیر از هر چیزی خبر دارد لذا اون ذات شما را نمیداند اون ذات خوب میداند شما را هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها ما چندتا تا دلیل خاندیم دلیل عقلی سه تا دلیل عقلی خاندیم یکی عرض کنم که درباره آسمان بود دوم زینت آسمان ستارهها و سوم اینکه اونها را الله تعالی برای ضرب زدن به شیاطین از اونها کار میگیرد دلیل چهارم عقلی خاص چهارم است این دلیل درباره زمین است مشکل اینجاست که انسان به پروردگار فکر نمی کنند توجه نمی کنند همین زمین که یکی از آیات پروردگار است آثار قدرت پروردگار ببینید این زمین چقدر منافع برای ما دارد و این زمین چه خیرات و چه برکاتی برای ما انسانها دارد این زمین هست که ما را نگه داشته ما فرو نمی رویم اگر به جای زمین شما فکر کنید آب بود همه غرق میشدند این زمین هست که باعث شده ما در این زمین در بخشی از این زمین برای خودمون اتاق درست می کنیم خانه درست می کنیم ساختمان درست می کنیم پناهگاه درست می کنیم در بخشی دیگر از این زمین برای خودمون راه درست می کنیم که از این شهر به اون شهر بریم از این آبادی به اون آبادی بریم در بخشی دیگر از همین زمین ما زراعت می کنیم میشکنیم شخم می زنیم تا اینکه بتونیم کشاورزی بکنیم تمام مایحتاج خودمون را فراهم بکنیم در بخش دیگری از همین زمین اموات و مردهای خودمون را دفن میکنیم در بخش دیگر این زمین حفر میکنیم چا میکنیم آب بیرو میاریم قنات را وصل میکنیم چاها را درست میکنیم لذا هزاران فوائد دیگر که ما از این زمین داریم از خاک زمین داریم از سنگ زمین داریم. لذا به زمین الله می فرماد فکر کنید خدا و زمین را خدای از زواجل چه قدرتی در زمین گذاشته و چه نعمتی؟ الله می فرماد هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فمشفی في مناكبها الله انذاتی ح که قرار داد برای شما از. ضرول در حالی که اون زمین تابع هست در اختیار شما است. هر کاری دلتون میخواد اونجا انجام میدید. هر نوع استفاده زیبای از زمین شما شماکن چون زلول است زلول یعنی تابع ف شوفی منکی به شما بروید در مناکب به زمین بروید مناکب به پشت زمین شانه های زمین یعنی روی زمین شما را برید من رزقه و کلو میر رسقی و نیمت دوم. بخورید رزق الله را که در این زمین برای شما هست و الیه النشور هم بخورید هم فکر آخرت را داشته باشید الله می فرماید از این زمین استفاده می‌کنی به همین زمین آخر دفن می‌شی از همین زمین دوباره حشر می‌شی منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم طاره أخرى وإليه النشور فقد وفقت بسوء وهزبلن شدن شما وزنده شدن شما بعد از مردن امنتم من في السماء از اينجا عرض كردم بعضي از دلائل هستن كه بعد از اون دلائل تخويف ها مياد هم دنيوي هم اخروي شما قبل از اين تخويف اخروي خاندي درباره جهنم بود حال جا تخويف دنيوي بعد از اين دليل ميخوانيد خداوند عزوجل می شما آیا ایمن هستید بیغم هستید که خدای آسمان ها شما را در زمین خسف نمی کند ببین امنتم من فی من فی السما آیا خداوند وجل در کجاست قرآن میگه در آسمان است در حدیث هم آمده که کسی را رسول الله صلی علیه و وسلم پرسید کنیزه کی را که این الله گفت فی السما در آسمان است خب در آسمان است مانایش چیه گرچه بعضی ارز کنم که این توجیر را کردن که قبله توجه بسوی الله آسمان است یعنی هر وقتی که می خدا را صدا بزنی متوجه خدا باش بطرف آسمان نگاه کن قبله توجه الله چیه؟ آسمان است اما بعضی دیگه معتقدن که منظور از منف سما در آسمان مظاهر قدرت پروردگار هستند اون قدرتی که ما ندیدیم ولی ایمان داریم اول این آسمانها هفته هستند بعدا اونجا هزاران و میلیونها و میلیاردها ستاره و سیاره هستند که ما بعضی از اونها را میبینیم دیگر اونجا عرش هست کرسی هست لوح محفوظ هست صدرة المنتها هست بهشت هست جهنم هست همه اون چیزهایی که خدا درست کرده و از آثار بزرگ قدرت پروردگار همه اینا در آسمانها هستند لذا مرکز قدرت آسمانها هست به این خاطر گفته شده من فی السما این یک توجیه دیگر هست اما انها همه توجیهات هستند بهترین چیزی که سلف ما میگویند علما سلف معتقدند اون اینه این, این نو آیات از متشابهات هستند خداوند عزوجل پاک است از اینکه در یک مکان خاصی متمکن و جای داشته باشد خدا در جای خاصی نیست خدای عزوجل چون از جسم پاکه هر چیزی که هر تفسیری هر توجیهی که برای خدا تعالی جسم را ثابت بکند برای خدا مکان را ثابت بکند حیض را که بش یک محدودیتی برای خدا اثبات بکند این همه توجیهات باطله چون خدا نه جسم دارد نه مکان دارد نه محدودیت دارد نه زمان دارد خدای عز و جل در همه جا هست همه مکان ها مال اللہ است و هو معكم اينما كنتم. لذا بهتر است که این آیه را همون طور که سلف گفتن از متشابهات است و اینجا سکوت بکنیم بگیم خدا در آسمان است چطور؟ الله عالم ال آیت من المتشابهات المش... لکونیه تعالی منزحا عن التمکین فی السما اللہ ما قاضی الله در تفسیر مظهری میگه که خدا تعالی پاکس از اینکه در آسمان متمکن باشه فمذهب السلفی از سکوت پس مذهب سلف چی هست سکوت است. کی چی بجیم سکوت کنیم. علامه آلوسی نوشته و ائمه سلف لم یذهبوا الى غیره تعالی. اولا در آسمان خداست چیزی چیز دیگه نه و الايه عندهم من المتشابه. آیه از متشابهات است. وقد قال صلى الله علیه و سلم امنوا بمتشابهه. رسول الله فرمود که به آیات متشابهات ایمان داشته باشید و لم یقل نگفت شما او تعویل کنی شما توجیه کنی شما مراد بیان کنید فهم مؤمنون بانه عزوجل لذا سلف ایمان دارند که خدای عزوجل فی السما هست علی المعنی الذي اراده به هم معنای که خدا خودش میداند و اراده کرده معکمال تنزیه با وجود اینکه خدا را از هر چیز پاک بدانیم، از هر عیب، مثل جسم عیبی هست، مکان عیبی هست، محدودیت عیبی هست، حیز عیب هست، لذا از همه اینها خدا را پاک بدانیم، این هست، مذهب سلف، لذا الله می فرماید، این زمین را من برای شما درست کردم، ای اهل زمین، آمنتم من فی السماء، الان معنیش اینه که در این زمین تمرد نکنید، در این زمین سرکشی نکنید تعبیر زیبا یکی از اساتید در زمین خدا خدا را نافرمانی نکنید در زمین خدا غیر خدا را سجده نکنید در زمین خدا غیر خدا را فریاد نزنید اگر شما این کار را کردید اون وقت ایمان نباشید که خدا تعالی در همین زمین شما را خصف بکند همونطور که قبل از شما افرادی بودند سرکشی کردند تمرد کردند روی زمین خدا تکبر کردند خدای تالات در داخل زمین آنها رفت فرو برد لذا الله می فرماید آ من فی السما آیا ایمن هستید از آن ذاتی که در آسمان ها است این یخسف بکم الارض ان که خسف بکند شما در زمین بنویسی مثل قارون فاذا فا هی تمور در این هنگام میبینی که زمین چی تمور میلرزد یعنی تکامل خورد و انسان را در داخل می برد ام امنتم من فی السما آیا شما ایمن هستید از آن ذاتی که در آسمان هست این یرسل علیکم حاسبا اینکه بفرستد بر شما توفانشن و بعدی که شماره وسیله آن مثل قوم الود سنگباران کند وقتی که اون عذاب بی آیت فستعلمون کیف نذیر اون وقت می دونید که انذار خدا چیه نذیر اینجا بیمانی چیئے انذار اینکه خدا بیم می دهد شمارا شمارا می ترسوند اون وقت می دونید انذار یعنی چیو و لقد كذب الذين من قبلهم خداون می فرماید. مثل شما انسانهایی بودن بودند در گذشته صاحب عقل و خرد بودند آنها هم خودشون را همه کاری وقتی که دعوت انبیاء آمد تکذیب کردند تکذیب که کردند ببینید احوال آنها را تاریخ را بخونید انها با چه سر نوشته زاری گرفتار شدند ولقد لقد كذب الذين من قبلهم همانہ تکذیب کردن کسانی که قبل از این قریش مکه بودند فکیف کان نکیر چگونه شد نکیر یعنی انکار مراد از انکار یعنی اون عذاب ناگوار اون عذاب ناگواری که اسوی پروردگار آمد چه به صورت صاعقه آمد چه به صورت رجفه و زلزله آمد چه به وسیله از کنم سیلاب آمد انواع عذاب ها چگونه سخت بود این عذاب ناگوار اولم یرو الى الطیر فوقهم صافات و یکی دیگر از آثار قدرت و از علائم قدرت پروردگار دلیل عقلی پنجم خاص هست پرنده هست الله عز و می فرمه پرنده را نگاه کن این پرنده در فضا هست در آسمان هست می بینی که این پرنده گاهی بال می زند گاهی بال هم نمی زند را باز کرده نمی افته. این پرنده را کی نگه داشته این ذات رحمان است. خدا تعالی چنان او را نگه می دار. شما یک نخوتی را می اندازید در فضا دوباره اون زمین را چی می کند می کشد میوفتد پایین، اما آن پرند نه. الله میفرماد: اولم یروا إلى الطائر. آیا نمیبینم پرند پرندرا فوقهم بالای سریشان صافات و یقبض؟ صافات یعنی پرهاشون صاف هستند و یقبض یعنی قبض میکنه گاهی پر میزنند. ما یمسکوهن نیل الرحمن اونها را نگاه نمی دارد مگر ذات رحمان پروردگار است که او را نگاه داشته انه بكل شيء بصیر بدون شک پروردگار نسبت به هر چیزی بیناست همه چیز را میداند اما هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن خداوند میفرماید شما که مغرور خدایان باطل هستید شما که دل بستید به کمک اونها آیا بغیر از رحمان بغیر از ذات پروردگار این خدایان می شما را کمک کنند؟ چرا اینقدر فریب خوردی کافرین کفار را خدا می مشرکان چرا فریب خوردید؟ شما دلتون خوش برای این بطا برای این سنگها برای انسانهای ضعیف ام من هذا الذي هو جند لكم آیا که هست این کسی که جند لکم لشکر شماست حامی شماست لشکر شماست ینصرکم من دون الرحمان که او یاری میکنه شما را بدون از رحمان، بدون از خدا کی شما را یاری میکنه کی نصر لشکر شماست و ناصر شماست این الكافرون الا فی غرور ان حماقت مجرمین است واغین کفار در فریبند که به خدا متمسک نمیشن متوسل نمیشن به غیر خدا متوسل میشن به غیر خدا متوسل شدن مثل چنگ زدن است به کف خدا تعالی در جای دیگه بیان میفرماید کسی که آب داره او را میبرد به کف چنگ میزند کف آب کف سیل این کف او را نگاه میدارد هرگز نه. لذا الله میفرماید امن ام هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقه اینا همه استفهام اصلا استفهام انکاری استفهام انکاری به معنی نفی است یعنی کی هست کسی نیست معنی شمینه کسی نیست ذاتی وجود نداره امن هذا الذي یرزقکم آیه کی هست این کسی که شما را رزق بده ان امسک رزقه اگر الله رزق خودش را امساک کن دارد اگر در روزی را ببندد اگر درآمد شما را خدا ببندد شما از کجا می خورید کی به شما رزق میده بل لجو فی عتوب ونفور اما باوجود این همه سختی ها گائی از طرف خدا میاد بعض هم انسان غافل متوجه نمیشه گاهی قحط میاد باران نمیاد کشاورز بیچاره سرگردانه او دامدار سرگردان هست همه سرگردان هستند از کجا بخوریم؟ الله عز و می اگر این در رزق را خدا ببندد شما از کجا می خورید؟ بل لجو فی عطوب و نفور خدا در مجرمین می که این مجرمین بل لجو لجو لج داخل شدن ورود ولجا یلجو بلکه اینها داخل شدن پا گذاشتن فی عتب و نفور در سرکشی و نفرت استوحید یعنی بجای اینکه قبول بکنند بجای اینکه این دلایل انها را قانع کند اینها پا در چی گذاشتند؟ پا به سرکشی گذاشتند پا در نفرت و دوری استوحید گذاشتند لذا خدای تعالی می فرماید این انسان گمراه نمیشه کاری براش کرد و بعد از این مقایسه میکنه انسان گمراه را با اون انسان دارای ایمان اللہ می فرماید افمن يمشی مکبًا علی وجهه آیہ ان انسانی کی راہ میر بر چہرےش مکب یعنی سرنگون علی وجه بر چطور راہ میر کہ پایش و لنگش به آسمان هست و چہرےش به ہے روی زمین است فرض کن کسی کہ گمرائی است اون دیگه روی پا راه نمیره. میره اون سرنگون اون روی چہرے راه میره اهدا آیا این انسان بیشتر بر هدایت است؟ این انسان بیشتر بر مسیر حق است، اما یمشی سویاً على صراط مستقیم. اون انسانی که راست راست راه میره و بر راه مستقیم میره. اونی که راست راه میره، درست راه میره، بر راه مستقیم میره. او به مقصد میرسه، او به منزل میرسه، اما اون انسانی که سرنگون است، روی چهره راه میره، اون هرگز به مقصد. نمیرسه. لذا الله عز بعد از اون دلیل پنجم این تخاویف را بیان فرمود و این تقابل را که یک مشرک با یک مومن چقدر فرق دارد بعض دلیل دیگری خدایتالا دلیل اقلی خاصی ششم اللهم فرمید قل هو الَّذِي أَنْشَأَكُم وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ بگو آن ذاتی که شما را آفرید آن ذاتی که شما را خلق کرد و جعل لکم و اون ذات برای شما گوش قرار داد شما را قرار داد والابصار شمار شما بینا برای شما چشم و به شما قلب داد یعنی شما را عاقل و دانا هر چیزی را درک می کنید متوجه میشوید شوید کدوم ذات است همین ذات که همه چیز را، همین نعمت را، او داد عقل و درک و دانایی را او بیش داد چشم را او بیش داد بیشتر اسباب علم همیشه تا هستند. انسان با چشم می بیند، با گوش می شنود و با قلب یا عقل چی میشه متوجه میشه. لذا خدا اشاره می کند که اسباب علم را، اسباب هدایت را، اسباب درک و فهم را من شما دادم شما به وسیله اینها چیکار کنید؟ به من برسید شما خدا را بشناسید به خدا برسید اما خداوند گلایه می فرماید از انسان های ناسپاس قلیلا ما تشکرون بسیار اندک است آنچه که شما شکر کنید یعنی بندگانی که شاکر پروردگار هستند جمعیت اونها بسیار کم است و قلیل من عبادی شکور بندگان شکر من کم هستند. ان دلیل الشوم دلیل عقلی هفتم الله می فرماید قل هو الذي زرعکم في الأرض و تحشرون بگو الله از ذات هستی هس که زرعکم فی در زمین منتشر کرده در تمام زمین گوشه زمین در شمال زمین جنوب زمین شرقی ترین بخش های زمین غربی ترین بخش های زمین میبینیم انسان است در همه زمین انسان ها را الله عز و جل منتشر کرده اما همون طور که شما را منتشر کرده و الیه تحشرون به سوی پروردگار شما حشر میشید شما جمع کرده میشید وقتی که بعد از توحید خداوند ذکر قیامت را می کند. مشرکین اعتراض میکنن میگوین خب قیامت را بیار و یقولون مت هذا الوعد این کنتم صادقین اونها چی میگویند؟ این وعده‌ای که شما میگین ما دوباره زنده میشیم پیش خدا حشر میشیم کی هست مت هذا الوعد این کنتم صادقین اگر راست راسمی تاریخش را به ما بگو ببینید تاریخ قیامت را بغیر از الله هیچ که نمیداندت حتی انبیاء نمی دونند رسول اللہ نمی داند اس قیامت می پرسندن که که قائم می شیئی پیغمبر چی جواب می ده قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو علمش پیش پروردگارم هست وقت اون برای هیچ کسی آشکار و روشن نیست مگر برای الله. من نمی داند. لذا الله می قل انما العلم عند الله بگو کو جز نہیں کہ علم قیامت نزد الله پیش خدا فقط الله می اذا قیامت بعد با کی برپا میเช و انما انا النذير مبین اما من محمد صلی اللہ علیہ وسلم یک ترساندی آشکاری هستم شما را از اذاب خدا و از روز قیامت می ترسانم بیم می دم ولی من نمی دونم کی هست علمش پیشه خدا هست اما احوال قیامت را بر شما می گم فلما را او الله می فرماید وقتی که اون قیامت را نزدیک ببینند وقتی که احساس کنند قیامت نزدیک شده قیامت بعضی از ماها با موتش هست. مرگ که بید قیامت می آید فلما رأوه ظلفتن وقتی که ان قیامت را نزدیک ببینند سیئت وجوه الَّذین کفروا بد می شه چهره کسانی که کف کردند چهریشون دیگر گون می شه چهریشون سیاه می شه وچهریشون پریشان می بیان آن مجرمان گفته میشه گفته میشه که حاضر لذی کنتم این آن چیزی است که نسبت به این تدعون شما ادعا می کردی می قیامتی نیست انکارش می کردی قبولش می کر... نداشتی الان ببین قل ارائیتم این اهلکن هی اللہ و من او رحمنا اینجا خدا تعالی از قدرتش می گی. واقعا قدرت مطلق در دست پروردگاره بگو ای محمد صلی الله عليه وسلم ان أهلکنی الله اگر خدا مرا هلاک کند و من معی تمام کسانی که با ما هستن با من هستن اگر را خدا از بین ببرد او رحمنا یا بر ما رحم کند خوب ما مال خدا هسیم اختیار را دارد که مار میمیراند یا بر ما رحم می کند مارا زنده نگه میدارد اما شما کافرین بگید که شما که عذاب خدا بیاید که شما را نجات میده فمن یجیرل کافرینا من عذاب علیم پس چی کسی پناه میده کافران را از عذاب دردناک چونکه این جمله چرا گفته شد مشرکین همیشه چی داشتند انتظار داشتند که برای رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و برای اصحاب حادثی بیاد، مشکلی پیش بیاد، اتفاقی بیفتی کارشون تمام بشه اما انجا خداوند به پیغمبر میگه بلفرض خدا این دنیا ببره یا خدا نگاه داره تمام نهزتی ایمان را کامل بکنیم ولی شما بگید عذاب شما برای شما بیاد کی شما را نجات میده؟ قل هو الرحمن بگو اون ذاتی که ما اعتمادمون به اون هست؟ وخدم ر قوم بستیم هو الرحمان اون ذات الله مهربان هست آمنا به ما به او ایمان آوردیم و علیه توکلنا فقط و فقط بر او توکل کردیم فستعلمون من هو فی ضلال مبین ان قریب میدانیت شما که چه کسی در گمراهی آشکار هست لذا شما میدانیت این هفت دلیل شد آخرین دلیل را می خانیم حتیین دلیل که این دلیل توحید هست توحید خاص هست الله میفرماید قل ارایتم این اصبح ماؤکم غورا شما به اینا بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم به من خبر بدهید اگر بگردد آب شما غورا غورا یعنی غائرا پایین بره این آبی که شما دارید استفاده میکنید از ته زمین میکشید این آب را مثلا 5 متر چاه آب هست شست متر میزنی آب هست پایینتر تر میزنی آب هست اگر خدای از و هزار میتر متر پایین، پاین آب را بگه برو پایین. خب آسمان را هم بگه نبارد فمن یعطی کم بما این معین چه کسی هست که برای شما بیاورد آب معین معین بعضی گفتن آب زلال شیرین بعضی گفتن آب معین آبی هست که ظاهر تراح العیون سر آب باشد آب چشمه را هم چشمه را عین میگویند چون با چشم دیده میشه دیگه مخفی نیست از چشمانی شما لذا معین را ابن عباس تفسیر کرده که ای ظاهر تراه العیون آب ظاهری که چشمها را ببیند اگر خدا عزوجل این آب را ته زمین ببرد ته ته ببرد اون وقت کی هست که برای شما آب ظاهری بیارد یا خدای تعالی آبرا از شما ببندد گاهی میبینیم خدا می آره. خدای تعالی قحط میاره این قحط آوردن قحط خدایی هم گاهی تنبیهی برای ما انسان ها هست گوشمالی هم هست و گاهی تذکر هست که شما ببین انسان تمام این قدرت ها نمیتونن کاری بکنند وقتی که خدا جلوی آب را بگیرد اون وقت بسیاری از کسانی که بظاهر به خدا اعتقادی ندارند آجز میمانند صبحانه اللگاهی که خدای از زواجل مشکلات را بیار انسانها چطور آجز میمانند یادم هست همین پارسال وقتی که کرونا به اوجش رسید و خیلی شدید شد در همه جا شدید شد پارسال پار بود یا پیرار سال این جمهور قبلی امریکا به مردمش گفته وقتی که خیلی مردم اونجا هر روز هزاران می گفته بود که دیگر راهی نیست همه روز یک کلیسا برید دعا کنید یعنی به این نتیجه رسیدن که فقط خدا می تونه کار کسی دیگر نیست لذا الله می فرماید که فمن یعتیکن بما این معین اون وقت اون آب ظاهر را که روی زمین باشد و همه ببینند کی میاره این آب را کسی نیست بس به این نتیجه می رسید که اول و آخر قدرت به دست الله است انبیا اسفیا صالحان اولیاء تمام هم او را زاری کردند همه از او می‌خواستند هر وقتی که موسی نیاز به آب داشت ایستسقا موسی لقومه رسول الله صلی الله علیه و هم نیاز به آب داشت هم دعا می‌کرد اللهم اسقنا همه او را فریاد می زدند. شما چرا غیر الله را فریاد زنید؟ لذا از این دلائل هشتگانه ثابت شد که واقعا قدرت به دست الله است تصرف به دست الله است همه خلاق به دست الله است پس تبارک الذی بیده الملک برکت دهنده هم خدا هست. چرا از غیر او برکت می خواهید و برکات را شما در مخلوق می جوید. برکات را فقط از خالق بگیرید